طریقت عارفان و قدیسان طریقت تسلیم است در های عارفان گزارش زندگی بسیاری را میخوانیم که گفته شده از طریق رنج به خدا رسیدند در این باره چه می به تعبیری دقیق تر آنها از طریق رنج به خدا نرسیدند زیرا رنج متزمن مقاومت درونی است اگر مقاومت درونی نباشد رنجی نیز نیست آنها از طریق تسلیم به خدا رسیدند از طریق پذیرش بیچون و چرای آنچه هست، اگر رنجی کشیدند، رنج آنها آنها را به وادی تسلیم کشانده است، در همین وادی تسلیم است که دیدار میسر است. چگونه تسلیم را با پیدا کردن خداوند یکی می انگارید؟ زیرا مقاومت درونی و ذهن از هم جدا نمی شوند، کنار گذاشتن مقاومت درونی، یعنی تسلیم، خاتمه دادن به علوهیت ذهن است. ذهنی که خدای گونه بر تو فرمان میراند، اما خدای حقیقی تو نیست. بدینسان دین سان، همه قضاوت و همه زهنیت و عواطف منفی محو میشبند. آنگاه، ساحت خدا که توسط کفر زخیم ذهن پوشانده شده بود، رخ می با آغوش خود را بر روی تو میگشاید ناگهان آرامش ژرف از درون تو میجوشد و از تو جاری می شود در متن این آرامش ژرف است که گل شادمانی حقیقی میشکفد در دل این شادمانی حقیقی است که رایحه عشق در فضای وجود تو میپیچد در کانون عشق در قلب عشق در هسته مرکزی عشق است که با حقیقتی لایزال بی و نشان بی و جاودان دیدار میکنی با خدا من تعبیر پیدا کردن خدا را به کار نمیبرم زیرا چگونه ممکن است چیزی را پیدا کنی که آن را هرگز گم نکرده ای به تعبیر مولانا آنان که طلب کار خدایید خدایید حاجت به طلب نیست شمایید، شمایید چیزی که نکردید گم از چه جویید؟ کس غیر شما نیست کجایید، کجایید در خانه نشینید و مگردید به هر در زیرا که شما خانه و هم خانه خدایید خواهید ببینید روخن در روخ معشوق زنگارز آینه به سیغل بزدایید واژه خدا تی ها و هزارها مورد سوء تعبیر قرار گرفته است چنان از خدا سخن گفته می شود که گویی او موجودی است جدا از تو و جدا از همه چیز و همه کس خدا یک موجود نیست بلکه عین وجود است در اینجا ما با فاعل شناسایی یعنی انسان و موضوع شناسایی یعنی خدا روبرو نیستیم صنویتی در کار نیست، توحید محز است. تجربه خداوند تجربه است ساده و بسیط شگفت آن نیست که تو خداوند را تجربه کنی؟ شگفت آن است که چرا او را تجربه نمی کنی؟ طریقت رنج طریقتی قدیمی است تا زمانهای اخیر گمان میکردند رنج بردن تنها طریق رسیدن به خداست. اما نباید قابلیت این طریقت را نیز انکار کرد این طریقت هنوز هم کارایی دارد مسیح ثابت کرد که بدترین حادثه زندگی یعنی میخکوب شدن بر صلیب میتواند به بهترین حادثه زندگی یک انسان تبدیل شود. حادثهی که تو را به ساحت تسلیم به ساحت مرگ میکشاند و تو را وامی دارد که در ساحت خدا هیچ چیز و هیچ کس شبیه خدای گونه شبیه زیرا خدا نیز چیز یا کس نیست. خداوند نیز هیچ چیز و هیچ کس است. تنها رنج ناخواسته است که اکثریت ناآگاه را به ساحت تسلیم و بیداری می کشاند. این رنج را خداوند بر انسان تحمیل نمی کند. این رنج را انسان خود بر خود تحمیل می کند. این رنج را زمین در حالت تدافعیش در برابر اقدامات ویرانگر انسان بر انسان تحمیل می کند. با وجود این هستند کسانی که رنج نمی برند و به روشنی می رسند. تو نیز می توانی یکی از آنها باشی. طریقت رنج یعنی تو را به اجبار به ساحت خدا بکشانند. با جیغ داد تو سرانجام تسلیم خواهی شد زیرا رنج را تاپ نخواهی آورد روشن شدگی آگاهانه آن است که وابستگی خود را به گذشته و آینده کنار بگذاری و لحظه حال را مرکز توجه خود قرار بدهی یعنی این گزینه را انتخاب کنی که ساکن ساحت حضور باشی نه ساکن زمان یعنی به آنچه هست آری بگویی، انگا دیگر نیازی به رنج نیست. فکر میکنی به چه مدت زمان دیگری نیاز داری تا به این مرحله برسی که بگویی من دیگر درد و رنج نمیآفرینم. به چه میزان رنج دیگر نیاز داری تا دست به این انتخاب بزنی؟ اگر فکر میکنی که به زمان بیشتری نیاز داری، این زمان بیشتر به تو داده خواهد شد. به همراه رنج بیشتر زمان و رنج هرگز از هم جدا نمیشوند. قدرت انتخاب نظرتان درباره آنهایی که دوست دارند رنج بکشند چیست؟ چرا آنها دوست دارند مورد آزار و عذیت قرار بگیرند؟ چرا آنها خود را از وضعیت دردناکشان بیرون نمی کشند؟ چرا آنها رنج را انتخاب می کنند؟ واجه انتخاب را باید با احتیاط به برد. به ویژه در این متن. انتخاب این واژه در متن حرفهای شما، به این معناست که بعضی ها وضعیت های منفی زندگی را واقعا انتخاب می کنند انتخاب آگاهی است، درجه بالا از آگاهی بدون این آگاهی انتخابی در کار نیست انتخاب زمانی معنا پیدا می کند که تو خود را با ذهن خیش و الگوهای آن یکی نپنداری لحظه ای که تو حضور پیدا می و یا به عبارت دیگر دوباره به دنیا میایی تا وقتی که به این مرحله نرسیده ای هنوز ناآگاه هستی یعنی مجبوری که بر اساس ذهنی شرطی شده باورهایی خاص داشته باشی به فکرهای خاص بپردازی احساساتی خاص داشته باشی و رفتاری خاص از خود بروز بدهی به همین دلیل بود که مسیح بر بالای صلیب خیش گفت خدایا اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه میکنند آگاهی هیچ ارتباطی به میزان اطلاعات تو ندارد هستند کسانی که در رشتههای تخصصی خود اطلاعاتی عظیم دارند اما در ساحت معنوی بسیار ناآگاه هستند این آدمها را در میان پزشکان، مهندسان، استادان، روحانیان، بازرگانان بسیار میبینیم. اینها دلی ناشاد دارند و فروغی در چشمانشان نیست. ذهن آنچنان که توسط گذشته شرطی شده است همواره در صدد بازآفرینی آن چیزی است که با آن آشنا و معنوس است. حتی اگر این چیز، در داور باشد حداقل برای ذهن چیزی است آشنا ذهن مدام به شناخته ها می می‌چسبد ناشناخته برای ذهن خطرناک است زیرا ذهن تسلطی بر ناشناخته ندارد به همین دلیل است که ذهن از لحظه حال اجتناب می کند آگاهی لحظه حال نه تنها در جریان ذهن شکاف میافکند بلکه زنجیری گذشته آینده را نیز پاره می کند هیچ چیز تازه ای نمی تواند به دنیای ما بیاید مگر از طریق همین شکاف بعضی ها طبق الگوهای ذهنی کهنه خود را گناهکار و در نتیجه مستحق رنج و مکافات می دانند وقتی می گوییم کسی برای خود رنج می کیست که این رنج را می بیتردید، بی تردید الگوی ذهنی عاطفی که از گذشته به ارث رسیده است چرا باید از این الگو برای خود هویتی بسازیم و گمان کنیم که این هویت واقعی است و قدرت انتخاب وضعیتهای گوناگون را دارد الگوهای ذهنی خود تو نیستند هویت حقیقی تو ربطی به گذشته ندارد اگر به نیروی لحظه حال دست پیدا کنی انگاه می توانی چرخی وضعیت شرطی شده خود را بشکنی و صاحب اراده و انتخاب شوی هیچکس کس درد و رنج و نزاع و مشقت را انتخاب نمی کند اینها حاصل عدم حضور کافی برای امهای گذشته است تو کاملا در اینجا حضور نداری ذهن شرطی شده از غیبت تو استفاده می کند و زمام زندگی تو را در دست می گیرد تا هنگامی که ذهن تو با الگوهای شرطی شدهش زمام زندگی تو را در دست دارد تا هنگامی که تو ذهن خود هستی چگونه می توانی دست به انتخاب بزنی تو حتی حضور نداری نیستی که انتخاب کنی آیا هیچکس مسئول اعمال خیش نیست؟ اگر زمام تو در دست ذهن توست گرچه قدرت انتخاب نداری اما از طبعات و نتایج ناآگاهی خود رنج خواهی برد مجبور خواهی شد که بار سنگین ترسها، خصومتها، مشکلات و درد و رنج ها را به دوش بکشی همین بار سنگین است، که سرانجام مجبورت میکند تا از چرخه ناآگاهی خیش بیرون بیایی چگونه میتوانم به سطح مطلوب از آگاهی برسم با پذیرش کامل آنچه هست و حضور کامل در لحظه حال حضور کلید است لحظه حال کلید است چه وقت کاملا تسلیم شده ام وقتی که دیگر نیازی به طرح این پرسش نداری با مناجاتی از سعدی شیراز بحث را به پایان برسانیم پارسایی گفت خدایا از من مبور خداوند پاسخ داد کی پیوسته بودم به تو که اکنون ببرم از تو کی بریده بودم از تو که اکنون بپیوندم به تو تا بیم وسال با توست وسالم کی میسر توانت شد تو را نه اتصالی هست بین ما نه انفصالی نه قربی نه بعدی نه ایمنی هست اینجا و نه ناامنی نه جای گفتار هست اینجا و نه جای خاموشی نه رسیدنی در کار است و نه بازگشتی. نه جایی برای فکر هست و نه جایی برای وهم. نه مکانی هست که فکر در آن فرود آید و نه زمانی هست که وهم بدان توانت رسید. به دست علما جز جستجو و به دست فقها جز حرف چیزی نیست. اگر به کعبه روی جز سنگ نمییابی اگر به مسجد درایی جز دیوار نمیبینی اگر به عالم صورتها نگری جز مصیبت نیست اگر به عالم بالا نگری جز حیرت نیست توحید موهدان آرایش است و الحاد ملحدان آلایش نه از موسا سودی رسد به من و نه از فرعون زیانی اگر بیایی شادمان بامایی دربانی نیست اگر نیایی در درمایی پاسبانی نیست